افسونه افسانه به نام خدا، سلام افسانهها ها داستانهایی هستند که سینه به سینه روایت شدند تا به امروز رسیدند داستانهایی که وقتی شنیده یا خوانده میشوند در کنار ایجاد فضایی سرگرم کننده و مفرح می توانند درس و حکمتی هم به مخاطب دهند چون طبق گفته اندیشمندان بسیاری از افسانهها ها برگرفته از واقعیت های زندگی هستند و پیامی خاص را به مخاطب منتقل می کنند در این برنامه می‌خواهیم یکی از های کشور مالزی را برایتان روایت کنیم. افسانی به نام معبد بوکیتیانگ که از کتاب های مشرق زمین نوشته محمد عبادزاده کرمانی اقتباس شده. امیدواریم از شنیدن این افسانه لذت ببریم سالها پیش در یکی از روستاهای کشور مالزی زنی به نام حلیمه همراه پسر کوچکش رشید در روتخانه در نزدیکی های تپه پوکیت یانگ زندگی می کرد. پدر رشید مرده بود و حلیمه برای گذران زندگی سخت کار می کرد تا بتونه رشید رو بزرگ کنه. همه اهالی اون روستا هم میدونستند که حلیمه توان مالی خوبی نداره و به همین دلیل هم خیلی از اهالی شهر به حلیمه و رشید کمک میکردند تا اینکه رشید قد کشید و جوان بالغ و ورزیدی شد و همراه مادرش کار کرد اگه بتونیم تا غروب این مزرع رو سر سامون بدیم ارباب ماتی پول خوبی بهمون میده رشید. اون وقت با این پول میتونیم یه سر بریم شهر رو تو برای خودت رخت لباس تازه بخری. رشید؟ حواست کجاست پس ؟ ها ببخشید مادر حواسم نبود؟ بله اینو خودم هم متوجه شدم اصلا شنیدی من چی گفتم؟ نه نشنیدم گفتم اگه منو تو بتونیم تا غروب این مزرعه میشه درباره این مزرعه دیگه حرفی نزنی؟ منظورت چیه؟ عرباب محاتیر از براتا خواسته به اینجا بیاییم تا این مزرعه را سر و زامون بدیم میدونم ولی ولی من فکری بزرگتری تو سرمه مادر چه فکری؟ تو الان برای خودت کاروبار داری؟ در آمد داری؟ همه اهل تو رو میشناس و کاراشون رو به تو میسپرم می اما دیگه اینجور کارا منو رازی نمیکنه من دیگه نمیتونم از اینکه ارباب ماهاتیر از ما میخواد مزرش و سر و سامون بدیم خوشحال شم داری ناشكری میکنیم این یه نعمته که ما الان کاری برای انجام دادن داریم نه مادر من نمیتونم مثل شما فکر کنم من رویایی زیادی تو سرم دارم دلم میخواد به اون رویاها برسم باشه برس کار کن و به رویاهات برس ولی با کار کردن برای اینو اون من به هیچکدوم از این رویاهام نمیرسم کی گفته نمیرسی اگه سخت کار کنی میتونی همه آرزاتو برابرد کنی نه مادر با پول کمی که این اون به ما میدن فقط میتونیم شکم اون سیر کنی خود شما یه اون برای اون کار کرد یه عمر زحمت کشی دستاتو نگاه کن آخرش چی؟ همین الان حتی یه سکه طلا پس انداز نداری من شاید اینه باشم که میگی اما تو جوونی توانت زیاده میتونی به سختی کار کنی نه خیر من تصمیم رو گرفتی. چه تصمیمی؟ من من تصمیم گرفتم که ها. خواهش میکنم منطقی باشیم مادر اطمان با تصمیمی که تو گرفتی منطقی بودن سخته که ازم میخوای منطقی باشم شاید شنیدن حرفی که من میزنم برای یه مادر سخت باشه پس لطفاً بهم به نگو چی تو سرت میبذاره ولی باید بگم چون من دیر یا زود تصمیمم رو عملی میکنم تو این وجود چرا باید من بگی چه تصمیمی گرفتی هر کار رو که خودت دلت میخواد انجام بده بهتون میگم چون شما مادر من هستی برای بزرگ کردن من زحمتای زیادی کشیدی اگه اون همه زحمت برات مهم بود حاضر نمیشدی من ترک کنی رشید ها؟ شما؟ مادر شما از کجا متوجه شدی من چه این تصمیم گرفتم؟ هیچ چیزی برای یه مادر ترختر از این نیست که فرزندش ترکش کنه در این شرایط که یه مادر نمیتونه منطقی باشه خب من من خیلی وقت میخواستم به شما بگم چی تو سرمه فکر میکنی اگه از اینجا بدی و مرا ترک کنی میتونی کار خوبی پیدا کنی و خص معلومه که میتونم شما خوب میدونی که من چقدر برای کار کردن انرژی دارم در ض شما دیگه پیرو و شدیم شدین مادر سالا کار کردین الان وقتش دیگه استراحت کنی یا خوب میتونی که من با یه گوشه نشستن استراحت کردن میونه خوبی ندارم پس تمام سالهایی که از خدا عمر گرفتم سرم به کار کردن گرم بوده و از کار کردن ابایی پس نگو به خاطر من میخوای ترکم کنی. و همش به خاطر شما نیست. به خاطر خودم هم هست. من از کار کردن برای این و اون خسته شدم. از اینکه بعد از سبت شب کار کنم و آخر شبم پولی کمی به عنوان دستمزد بگیرم خسته شدم. ببخشید مادر ولی من من راه همو انتخاب کردم. اگه راه خودتو انتخاب کردی پس نظر من دیگه اهمیتی برات نداره نه نظر شما برای من اهمیت داره ولی شاید اگه شما بدونین که با رفتن از این روستا خوشبخت میشم اون وقت با من موافق باشیم مادر من به شهر میرم اونجا برای خودم کسب و کاری فراهم میکنم و وقتی ثروت خوبی به دست آوردم میام اینجا شمارم با خودم میبرم شهر تو فکر میکنی زندگی همینقدر ساده است که میگی فکر میکنی تو همیشه همینی میمونی که الان هستی؟ معلومه چرا فکر میکنی من ممکنه تغییر کنم بشم یه رشید دیگه؟ من همین میمونم چون راه ها رسم زندگی رو بلدم مادم چون سرد و گرم روزگارو رو چشیدم چون تو زندگی چیزایی به چشمم دیدم که درکش برای تو آسون نیست من به دیگران اصلا فکر نمی کنم. برای من اصلا مهم نیست که دیگران چه ها کردن و چه ها من منم. رشید. من اصلاً دیگران فکر نمی کنم. پسر شما پسری که شما بزرگ کردین ممکنه تغییر کنه باور کنی من همین طوری باقی می همینطورم هم به روستا بر می گردم شما رو برای هنیشه با خودم می برم شهر نگرانیم من برای خودم نیست رشید برای اینه که راه رسم زندگی رو گم کنی خیالتون راحت باشه مادر مادر من خوب می دونم باید کار بکنم باشه <تصفيق> حالا کی این می همین فردا فردا میرم و انقدر تو شهر میگردم تا یه کار درست و حسابی برای خودم پیدا کنم بعدم میام با همدیگه میریم اونجا باشه پسرم خدا پشت پناه. بادر عشید بدون توجه به دلتنگی مادرش حلیمه به شهر رفت و بعد از مدتی در شهر مشغول به کار شد او با سخت کوشی کار کرد و تونست نظر خیلی از بزرگان شهر رو به خودش جلب کنه تا اینکه خیلی از تجار بزرگ شهر برای انجام کارشون پیش رشید رفتن و کارشونو به رشید محول کردند طولی نکشید که رشید تونست سرمایه خوبی از این راه به دست بیاره و کسب و کار خوبی را بندازه خبی همبی اومدم رشید! شده خب امروز کاربان یاکین به شهر می رسه باید چند نفر رو بفرسییم وباراممون رو تحویلیل بگیریم. میدونم حواسم هم از نگران نباش کاروان دو ساعت دیگه به شهر می کاش بتونیم سود خوبی از این محموله به دست بیاریم نگران چی هستی پسر؟ معلومه که مثل همیشه تو معامله سود میکنین اینجوری نمیشه تا من باید قدم های بزرگتری برم دیگه داری هرس می زنیره؟ نه نه. چهرسی؟ چه من فقط می خوام ثروت بیشتری به دست میارم تو الانم آدم ثروت هستی؟ کمتر از دو ساله که به این شهر اومدی تونستی تو این شهر خونه بخری مغازهرم که خریدی میونه تورجار شهر اسم و رسمی پیدا کردی الان هم داری نیمی از مال و تجاره یا پیمو میخری دیگه چی میخوا؟ میخوای؟ میخواای بدونی من واقعا چی میخوام آره میخوام بدون من میخوام بشم یکی مثل یوسف یوسف؟ یوسفوم یوسف همون که مالک نیمی از مغازه های این بازارچه هست همون که همه مردم شهر و خیلی از توجار معروف وقتی چشمشون بهش میفته مقابلش تعظیم میکنم <تصفيق> حتی هم حرف میزنه چیه طور خود تو چطور میتونی خودتو با یوسف مقایسه کنی من از آرزون گفتم و دیر یا زودن به آرزون میرسم حالا میبینیم رسیدن به موقعیت یوسف فقط یه راه داره چرای؟ باور کنم که خودت هنوز اون را فکر نکردی خب من به خیلی چیز فکر کردم اما نمیدونم الان تو سر تو داره چی میکسره به نظرم اگه میخوای به موقعیتی که یوسف داره برسی فقط باید به با دخترش ازدواج کن دخترش؟ مگه یوسف دختر داره؟ بله یه دختر داره به اسم زارا دختر خوب و عقلیه از خیلی ها زیبایی و, و کماراتشو شنیدار خب اگه یوسف حاضر نشه دخترشو بغد من درگیره من هم همین فکر رو میکنم خیلی زارا خواستگارای زیادی داره چند تا سرزمین های دور و نزدیک تجّار بزرگی به خواستگاریش اومدن ولی یوسف حاضر نشد زارا رو بغداد اونا در میذاره. پس پس باید راهی از وجود دختری یوسف یه راه مناسب پیدا کنم. چرا؟ نمی‌دونم. بعدش فکر کنم تمام شاید شاید به تاخورش یه مدت بدم و بیشتر یوسف کار کنم خودمو یه جوری ثابت کنم. فکر خوبیه. معلومه فکر خوبیه. به من میگن رشید شک نکن تو این را موفق میشه باشه ببینم چی کار میکنی آقا راشی رشید پیش یوسف رفت و خودش معرفی کرد و بهش گفت که قصد داره کنار یوسف کار کنه یوسف هم که مرد خیرخواهی بود با پیشنهاد رشید موافقت کرد رشید چند ماه کنار یوسف کار کرد و بالاخره یه روز دلو به دریا زد و زارا رو از یوسف خواستگاری کرد یوسف هم که متوجه شده بود رشید پسر سخت کوش و پرتوانیه با ازدواج زارا و اون معافقت کرد و خیلی زود زارا و رشید با هم ازدواج کردن و به خونه بخت رفتن پیروزی پشت پیروزی این یعنی زندگی زنده باشی رشید زنده باشی زارا یارو باز کن زارا خبرهای خیلی خوبی برات دارم کیه؟ منم زارا آه. سلام بر زیباترین بانوی این سرزمین سلام رشید جان خوش اومدی بیتون چی شد که امروز زود اومدی خونه اومدم زارای عزیزم رو قافل گیر کنم قافل گیر کنی؟ چطوری؟ اش هم نمیتونی بکنی که من امروز چه معامله ای کردم زارا چه معامله من یه کشتی خریدم باورت میشه یه کشتی خدای منی خیلی خوبه رشید معلومه که خیلی خوبه برای همینم به خونه اومدم ازت بخوام خیلی زود وسایل تو جمع کنی با هم بگی سفر درسته سال میدارییم یه سفر دریایی. یه سفر هیگه جانانگی راست میگی باور کن راست میگم میخوام دور دنیا رو با این کشتی بگردیم. میخوام به تلافی این همه سال که فقط زحمت کشیدم و کار کردم سفر کنم و از زندگیم لذت ببرم عالیه که این قرار راهی بشی ؟ هر وقت که شما بگی فردا خوبه بله که خوبه پس من میرم وسایلم آماده کنم منم یه سر میرم به محل کارم و کارهای ناتمومو انجام میدم فردا صبح علت طولو را میافتیم عزیزم زارا و رشید راهی سفر شدند و از شهرها و رستاها جزایر کوچک و بزرگی گذشتند تا به نزدیکی های بوکیت یانک رسیدن زارا که میدونست رشید اهل اون منطقه است از رشید خواست که به دیدن مادرش بره رشید هم موافقت کرد کشتی پهلو گرفت و رشید و زارا به دیدن حلیمه رفتن حلیمه وقتی شنید که رشید به روستا برگشته خوشحال شد و به استقبال رشید و همسرش رفت رشید رشید پسرم چه کار خوبی کردی که برگشتی رشید سلام مادر من اسمم زاراس همسر رشیدم سلام دخترم چه دختر زیبا با وقاری هستی پس پس رشید کجاست آه، رشید آه. رشید همین الان اینجا بود یعنی چی اگه الان اینجا بود پس کجاست من از خونه تا اینجا دویدم که رشید ببینم کجا رفته باور کنید همینجا بود رشیدم اومد شما رو ببینه اونم دلش برای شما تنگ شده بود مادر رشید رشید پسرم ممنونم که اومدی به مادر پیرت سر بزنی ممنونم که به قولت عمل کردی و به روستا برگشتی هر جا هستی بیا ببینم ادلم برات تنگ شده از خدا خواستم اونقدر بهم عمر بده تا یه بار دیگه تو رو ببینم پسرم رشید رشید نگران نباشین مادر رشید هر جا که رفته پیداش میشه نه کل بلایی سر پسرم اومده نه نه خیالتون راحت حالش خوبه آ اونهاش اونجاست کو کجاست کنار اون درخت بریم پیشش چقدر عوض شدی مادر فغلکن بزار ببوسمت س به خاطر این همه سالال خااننم کنین بم کنین خانم داری چیکار می رشید؟ این چه کاری خانم؟ خانم به من میگه خانم؟ من, من مادرتم رشید رفت این چه کاری رشید این زن مادر اتباکنی خوشحالی بدیدن تو مد. نذاره این زن با این لباس های پارهمون درس مادر من نیست من مادرت دیم چطور میتونی ماکر من بش نشید؟ مگه این من نبودم که تو رو بزرگ کردم مگه من نبودم که تو خونه ها و مزاره اون کار کردم تا تو قد و بزرگ بشی یادت رفت من شما رو نمیشناسم خانم من مادری مثل شما ندارم لطفا از من فاصله بگیریم بریم زراف چی داری میگیره مگه میشه این زن اشتباه کرده باشه و تو رو با پسرش اشتباه گرفته باشه امکان نداره من مادرشم حلیمه همونی که وقتی بچه بود اون رویشون ها میذاشتم و با خودم به مزرعه میبردم. وقتی گرسته بود بهش غذا میدادم و خودم هم گرسته میبودم وقتی مریض میشد دست با آسمان بلند میکردم و از خدا میخواستم که زودتر شفاش بده و ساعتها کنار رخت خوابش میشستم و برای سلامتیش دعا میکردم رشید چطور میتونی بگی که این زن مهرب و مادرت نیست؟ حالا که خوب نگاه میکنه ببینم تو خیلی شبیه مادرت هستی گفتم که این زن مادر من نیست زارا مادر من مرده خیلی وقته که مرده این زن میخواد خودش رو به جای مادر من معرفی کنه تا از من پول بگیره من این آدم رو خیلی خوب میشناسم ولی من اصلاً هیچ پولی نمیخوام پسرم هیچ چیزی نمیخوام فقط میخوام بغلت کنم فقط میخوام گرمایش خب کنم آن. میخوام بود کنم تو این سوالو عطر تن تو از اینجا دیگه می... جای موندن نیست من میرم تو یا با من میای یا پیش این زنی ریاکار میمونید <تصفيق> نه رشید نه من ریاکار نیستم به خود من ریاکار نیستم صبر کن حق نداری این رو به من بزنی من مانه ردن انصاف نرو نرو خواهش می آروم باشیم مادر شاید شاید واقعا رشید و با پسرتون اشتباه گرد ازارو نه, نه. مگه میشه یه مادر بچه خودشو نشنسه مگه میشه یه مادر عطرتن بچه خودش رو اسطح کنه اون پسر رشید منه پسر منه ولی روزگار اون روی خودش بشتهشون بشتشون داد میدونستم میدونستم اون رشیدی که ساده و پاک از این روستا میره دیگه هیچ وقت من این روستا رو یادش نمیم من دارم سواره کشکی بیشم زرا نمیخوای بیای؟ باید تو قبل از تاریکی امایش کنم ترک کنیم اومدم رشید بیا دیگه مادر. من دیگه باید برم شما هم بهتر برگردین خونه و منتظر باشین بسرتون به, به دیدنتون بیاد منو ببخشیم. خدا حافظ پسرم. کدوم پسرم. بسرم, بسرم. بسرم همینیه که داره از من دور میشه پسرم رشی تو نه من منو تنها بزنی نباید نباید رشید با بیرحمی را از خودش دور کرد و به خواهش های اون توجهی نکرد رشید و زارا سوار کشی شدند و به سفرشون ادامه دادند. حلیمه یه بار دیگه شاهد دوری فرزندش شد اون با قلبی شکسته به طرف تپه های بوکید یانک رفت و دست به آسمان بلند کرد و شروع کرد به گله و شکایت از رشید در همین موقع ابر سیاهی در آسمان ظاهر شد و صدای رد و برقهای محیبی در فضا پیچید چه خبره رشید؟ هوا داره طوفانی میشه زارا. بهتره بری قسمت زیریه کشتی. تو چی؟ من باید مراقب اوضا باشم. ملوانایی که به کار گرفتم خیلی حرفه نیستن. خدانگهت باش، جای کنم تو قسمت زیری نکشتی زرا. عجله کن. هوا داره طوفان میشه. من نمیتونم تو رو اینجا تَرک بذارم رشید. باید باید خیلی زود بشو به ساحل برگردونید. نه نشه. خیلی وقت. با... جهت باد در خلاف حرکت ماست. باد داره ما رو با خودش به وسط دریا میبره خدای من خدای بارون داره میاد رشید از اون عبرسی هایی که باره سرمون بود معلوم بود که چنین بارونی هم داره میاد شکار باید باید باید باید نمیدونم ذرا باقدر سعی کنم کشتی و به جهت مستقیم اداید کنم و مانع قرب شدنش بشم حک یه موج سنگین داره میاد براغه پشتنا براغه براغه داره به کشی نزدیک میشه کاری از دست من ساخته نیست دارم مران به کمک کمک کشتی شکسته شده الان برد چه کمک رشی، کجای؟ کجایی؟ کجایی کجایی رشی یه نفر زارا رو ببره ساحل زارا با یکی از من رو سمت ساحل برای سوار قایق نجاشو برگرد ساحل عجله کن مران. من اینجا گیر کردم من میتونم نه میتونم میتونم ازت بگریزم برو زالا دو هاش میکنم برو برو زالا دفان سهمگینی کشتی رشید و درهم شکست مدتی بعد کشتی زیبا با همه مال و انوالی که داخلش بود قرخ شد رشید هم قرخ شد و از دنیا رفت و ملوانان به سختی تونستند زارا را نجات بدن وقتی زارا به ساحل رسید با روحی خسته و دلی شکسته به دیدن حلیمه رفت حلیمه با شنیدن خبر مرگ رشید افسرده و دلتنگ شد خدایا چرا بابا این کارو کرد؟ درسته که رشید دل منو شکست، درسته که نفرمانی کرد از من شد اما بچه ایمم من به مرگش راضی نبودم خواهش میکنم آروم باشی نمیتونم زارا نمیتونم آروم باشم من سالها برای بچم زحمت کشیدم به سختی بزرگش کردم چرا بعد اینطوری اون را از دست بده؟ شاید تغییر رشیدیم بود که در دریاقه نه دخترم نه این دست تقدیر نبود که باعث مرگ رشید شد خرور رشید باعث مرگش شد من مغرور شده بود با همون غرور به این روستا برگشت و به مادرش پشت کرد. با همون غرور دل مادرش شکست. با همون غرور به دریا رفتد از خش خشم دریا شد. <متصفيق> آیا من رشیدم و میخوام. میخوام بغلش کنم. میخوام گرمی تنش رو از کنم. میخوام تو چشمهای قشنگش نگاه کنم. چرا رشید از من گره؟ هوا سرد مادر. هره بریم خونه. یه وقت مریض میشی مهم نیست. دیگه هیچی برام مهم نیست مهم نیست زنده باشم یا نه سالم باشم یا بعد از رشید زندگی برای من اهمیتی نداره سارا دلم میگه رشید داره صدای شما رو میشترده بهش بگین که اونو بخشیدیم بهش بگین که ازش کینهی بدل نداریم مگه میشه یه مادر بچهشو نبخشید؟ اگه میشه یه مادر از من چشکینه بدت بگیر من بخشیدمترشید تو هنوزم پسر خوب منی هنوزم امید منی <تصفيق> چرا تنام گذاشتی چرا پسرم چرا چرا زجه های حلیمه در دل ساحل پیچید حالا بغز های پی در پی زارا هم شکسته شدن و سیلاب اشک روی گونه هاش جاری شد بعد از مرگ رشید زارا و حلیمه با کمک مردم روستا معبدی رو بر بالای تپه بوکیتیانک درست کردند. جوانان روستا هم کشتی کوچکی رو ساختن و اونو بالای معبد نسب کردند تا فرزندانی که در آینده به دنیا میان قدر و منزلت مادرانشون رو بدونن و یادشون بمونه که با قرور و تکبر با مادرانشون حرف نزنن و هنگام پیری، یار و همراه مادرانشون باشند. بله دوستان، این هم از افسانه بوکیتیانگ یانگ که از افسانه های کشور مالزی بود و به زیبایی برای ما روایت کرد که قرور و تکبر و مهمتر از آن پشت کردن و بیحرمتی کردن به پدر و مادر مانعی برای سعادت و خوشبختی است. افسانه بوکیتیانگ اقتباسی است از کتاب افسانه های مشرق زمین نوشته محمد عبادزاده کرمانی که امیدواریم از شنیدنش لذت برده باشیم افسانه معبد بکتتینگ تنظیم برای رادیو از صهیلا خدادادی بازیگران به ترتیب اجرا محروخ افسری نوشین حسنزاده امیر فرحیا، امین بختیاری، مهناز بستان دوست کارگردان ایوب آقاخانی افکتور نازنین حسام‌طونی صدا فرزاد شریفی تحییه کننده زهرا عبدالله زاده ها رنگی از زندگی هند زندگیتون دلنشین و مانا سانانی دیگر به